قهرمانی عزیز سلام تنبلات خوشحالی لباسی سعی میکنیم نویکتی بی تیش تی مجاوری مکریانی حتی نویلتن فرمن حاورمان تجاري موكرياني بردوام بیت لسرگيرانوي سرگوزشته جاني خوي اللقل پیشنواء قاضي محمد ده روش اك محمد لمجلس داوتی زورم پی زور اسنهنی ہے کہ مخابرات انگلس د 10 بجې د یانزنی سرنبر د بنجو اوتم شیخ معصوم خبریان پیاده وتی راز دکی من همو کسې خمله او ظلم برام شیخ زوری لجیر لناو شرستانو لادیدا پیدا کردو چونی دز ببرم گفتم شیخ لمزګهتی بازار دیخوندو مامل تاراش بو اموزه کی بنوینستر نسردین للا بو شیخ لسابلغ خوندنی تاو کرد راشتو بیاره دسن گراي و سابلغو دستی بخوندن کردو من بخيال لاموابو پیاوی انگلیسان و كاريان پیس پردوه بلاندیسان تاو لامرون نبو زور سال كوتا نیواناو لبغداد و کندر بوم یکیک حات لامووتی من لزندان بغداد دقال نستدین ناوی جیرابو کتوی داناسیو دیگو زور کورا کی سایولکو احمقا بابم لطالخشو شیخ معصومی اموزام لسابلاغ جگل شیخهات و فقیهاتی کاری گرنگ ترین لسربو امنیج گرووبان بوون للاشکری لیوی انګلیسه کان په ماوي یو ماموريتي اندامي چومسبل سغسود قلبا بيشم پیونديم هبو خوم کړد با افقهي کی زربدين حجر لاي وابو ملائکتم او استاذانيم کرل کوتو کندل شو دراوه نسر الدين به گرووباني لا دانکرک بديل جيراو دګل ديلي الماني الوګور کرا لفاش حلواشان لشکری دیوی قدرک لایران لتر هیڅ چوری امریکای کاری کردو لسرجن پیویخی لبیاره کوشتو لزندانی بغداد وباس او احمق یمنی بو شیخ معصوم لسابلاغ حرمایو دوه من بو جنید لسابلاغ بسرجنی بیاره یناو بو په پیوی ساو اكو خاونزویو زارو زور په دصلات بلاندیسن زور للاوانی دلگرم پاکهبون که اخیان بو روجګاری جکف حلد کیشو باو پړېدل پاشې وا حولېګه شکر دین شور شانه داو هیڅ سرد نه بوبونه و روجیک لا میاندو لا برخه و خانه لس کورسیګ د نشته بو کبره ارمنی بنوي آرام کردین هات له تنشتم د نشټ و به اوروک کتمن لبر خوې ووتی ناسم بلم اگر تو هجارې حله سی برادرت زبيحي قادری ضل شاد البالنج کیراونو استا تو بګرن ویگو تو رویشت جاور حاله با پید تا تویلو میانه یک بین رام کرد دستم کامیونه کالینا و تیمچو سرباری گچ. با یکی زور توند گیچی با سرو چاوم دا لره بوبو ما حیکلی لگیچ هیچ کم بدروه نما جرکتو زی خونتکندو چاوم حالینا روش لعا بوندابو ومزانی منگا در روشش هر گیچم للوتو گرو پاک دکردوا تاریخ اوروشا اوائل ابان ماه هزاروس یا سبسوچوار که سرتیب زنگانه نوسی ویا. هزاری مکریانی لجران ویست گذشته ژانی خویدا، دچتا سر باسی پیوندی ژانی خوی دگل برزنی نمیرد. دانوسید، دا دمان دا بیست و کلا کردستانی عراق، مل مصطفی برزانی شرشی کرد و دگل عراق و انگلیس شرطی. دعای بخیر من دکرد و بدال دگلی بین. مرحاضی دم زرینری جیکافو افسریتر کنایوی مصطفی خوش لسپای عراق در چوبونو چوبونالای برزانیو لبیوابو پیواندی دگل اما حت بون سابلاگو تواو دگلین ما بین من خوش بو با کورتی باسی شراکه برزنیو انگلیس و عراقم لدویچه پی دوهمی همی شرپ نامه دا نوسیوه پایز بو بارنده باری گوتیان برزانیکان آوره هاتونه گوندی قنقلا لنزیک سابلاگ بپلا دگل همه مولوده چرج دا دو ترومبلی باری من خواستهو چرپی برامان ل میشک لیبر کردو با برزانیان من برد. زوری نبرد برزانی حت نه شاروه. خلکی سابلا ورد و درشت با پیشوازیان درکوتن. خوراک جلک و پیالاو لهمون مالانوه بر بوده هد. خمدیتم من داله که کمای جلکانی دید کاشکانی خوی فراداو با پیخاوسی رای کرده و مال. برزانی اوی چک دربو لسربازخانه دامزرن. مالو مندالو پا تالیش لدیهاد جگه اندانه با یکن جرکا چاوم با برزانی کود زورم خوشویست اویش لسرق سیمر حاج و مصطفى خوشنو که باسی منیان بو با کرده بو زورم دگل خوشو با التفات بو ایتر او خوشویستی دوامی کرد تا برزانی چون اولاد روسانو که حتیش نو عراقی تا برزانی وفات کرد هر زور لطفی دگل ما بو کاملاو دولت لدوری سردش شرین بو مصر دوائی خوم نردمان کلوشارده بجدار بم. دقال چند پیشمرگی یکی خومالی و ریکوتین. ری بفر بو. دنیا کروی دکرد. شوک لگوندی قوزلوی لماالی آغا ماینه و. یکی بایوی دستر کندم. کابره یک لمده دیوی بدبینی و نویره بیتا خم آغا. خومچوم. مالشی روتو، قوتو، شدارو تاریک. پیوکی چردن بی دانشته بو. خومپی ناسن. اوتی. او شاعر منی شاعرم د مې شعر کې خومت بابل د سې فکر نزيکي د دقیقه بيته کې ګوت کله سر شورشي کولو قازي دا نه بو بيتي برپیداو بو ګتم زخرابو ماما تو زورت و شه عربي مليانه به کرینه و تابلن و خوزگه بزمانی شوانانت بگوتایو عربیتی دانه بوایا من که شعر دلم هر نراحتی اوم کردی باش نازانمو ناچارم اوشی بیگانه بکر بینم گوتی لسا والله من خوم شوانم جو بگیدا لسا را دستی پیه کردوا بابیر را من بیتکی تاگوری براسی سرم خدایا چن هزارانی و بلیمت من لی و پر قدری نگرتون نامه یکم بونوسی و گتم بی بس اگر منیش ن범 تولوی کار د دنیو بخیو دکن بلان 20 موا کمن جیو دوایو دیدارا پیره مرده بو نکره بو نما برهته سابلاق پشمقه ابلوقه گوندی قولتای د ابو کاپین صد کسیک سپای ایرانی لبو شرکرانی اما جګل 20 پشمقه یک چکدرانی گورکی دی وسردشتو سیاسن يبون زوری نبرد مصطفی خوشنویش حاتلامن روج یک دغل دلشاد الرسولی کلاویشی عدیبی کرد بو بسواری بملی چیوګدا درويشتین عجم به توپ ده انګرتین اوه یکم جار بو که توپم پیونن توپ دلشاد نو ببینم بینم ول لا مو ده کوي و ابزان مل شرم دل شادو در شاد من دانمان بجری خومن رو حال حلن هاتینو توپشمن وی نکود چنجرک ل شر ناو سنگردا بج در بو چهرک خبرینده کلشکری کی سیاستو پنجه کسی و دین بو رزگار کردنې شو چوین خو من لیدا گرتن برا بانی گینا براو تقا دامزرا زوری نبرد لشکرک خویان دا به دستاو او. بدیل من گرتن چکو فیشک من دا به عشایرو کلو پلی ورد و کدیت من دو شوشه و من زنی آرقا دلشاد و تر کردیانه را که خویان بیخونه و بلام شوشه به اولیمو درچونو کرد من و نان من هبو پرش من هبو بلام و قری پی خور زور بای بنانی وشگو چار را من دبوارد چوینا سرگوندی بیزیلی اغاکا من درکرد که جاشی دولت بو بو بیانی تیار من حتی سرو زوری شستیر لیرشاندین بلام کس من بریندار نبو اوش حوال جار بو که ببینم شردکا حوال شوی که چو مبوندی شینوی چند پیشمرگی بو ببنا کشکچی لسنگری دوری قول تیدا یکی نوی وستا برای می دنج زور خوش بو قطر زوړ خوشیده غوت غتم امشو تو مچو سبیشو شو پیکو دچین غوتی سبې شو چې د قوتو سنگر بیان او روزا وستا ابراهيم شهید کړه دوه پښمرګه بنوي شریف شکاکو رحمان چتا چون به استر لا شکیان هینایوه پېموایه لبرچکان دوجمنه وا په لا 500 فیشک پېوانند بلم ازایه نه خبر هل دخندرا، بانج ملاکم کرد کلا سر قبرکه بسی شهید بکاو بلای، اما شهید دونامره ملاجوتی چونخ سی وادکم قط اول شهید نیا خونتش و تشردی نیستلام. بانج مکرد دو قبر هل قنن یکن بوق ملاسک بابا ملا زردوس به هلگ راو بیهوش تخیل بو، ایوان بسر و و خوشیان هنوه ملینا وک بلو بل کاری کرد که وست برایمی وک ایمامی همزو ایمام حسین حساب کرد روش یک بارند باری کابره یک لشودا بانجی لکلکوان کرد بو بی پره نتوا کابره من گرد چکاری؟ و تی مو لخیر دگرم برادران کوتنه تحقیقاتو نوسین زور یک گوت فایده نبو شو بدنگی کیوا کنجوی لبه اره بشو که ده توانه با پینج گوله نیشان با پیکیه او کابره بینن دای کهین بزنید که دستی راسه کردی هاور او تی باو کم مم بخوا من جاسوسی عجمانم کتری نام برد دبا خالم دنیم خبریان بو با کتر دادنیر موا نردویانم بزنیم ایو چند کس نو لکم خانو دادا جین من نرده سابلاغ روج که تیارمان هات سرودایی کرد، یا مجبد فن لخوار و تقامل داد کرد. من لبن در تویک و لحوش کرد، دا تفنگم دایشت. علاشکار نیک، کپیش مرگی کی سابلا بو لسربانه و تقل داد کرد. چنچار هوارم لیکر، ورخوار، لوی خطره، جوابی ندم او، جویگران بو، دوری همو بقوله دایجره، ولامخوی برن کود. دوای خم لتو رکرد، کبالت سربان خوی پنه نداوه، حکایتی که گیراوه، که شیخ الاسلامی باوکیه من لرابوه، کاروش یک با تمال دوزراوه تاوه، که گوتویا، تو خواد تاجیر تیبرمدن، من با تفنگ دی کجم، کچی نی هنگوتوه، آغا لی تو رابوه کباشی کاروش کد لکیزدهن، گوتویا، بله آغا، نه هنگوت، بلا موام ترسان کتازارو ناکتو هم گرده، دویدر کردنی مام حسانی بیزله، با احتیاط پیش تاو کوتن همو خلقی دی وطماناوی من ودرنه لطاو گرم بونده پی دی برو مالان دید دنگم ده کنه پاراوه که کاریکی ضرورم هيا لا موابو پریسکه پولی لبیر جوا بی با گوتم اما زوب رو تیاره دی دوائی تاوی که دی دیتم دیسنبرو مالان دیتا گوتم ام جار ریت نادم و تی با قربان خالصه ای دی پیش مرگ هندکم خویی لذیذ داری دشمن داری لی نم. عجهم کللاهان حبو. توک من نبود کدیج کللاه. روزه کبرای کنه رش شتول. و توی من آمادم چنارن جک لیک بباستمو باشم لب نکللا و بیهوای مسیره. وتمان او خطر بوده کی. و کاکا من با صصال حبس محکوم بم نو سالم کیشه نه تو یک سالم مابو. روز بری اندام لسر زیادی معموا. اگر بسلامت هات موت فنجکم داری. د منوت ناکاکا مکا پيشمرګه بو تفنګي شد د دمې علي گاور کابراي مشهور بو لو نه وهات بو با پيشمرګه پيوا اعظم زور کم دي وا شوي کې امه د چوینه پيش هيزي وو علي ديار نه بو بي او رويشتين زور دور نه کوت بوينه لای قولت او موتقه هر مبرسه به هزاران ګله را شر بود، اما شر، خواه، اما چیه؟ اما چونه دژمن دجمن؟ او بریشکت قندنه چیه؟ اما شر هورازه سرکوتینو، سرباز من به یقصیر گرتن، که نوا علا لبنکه دانشته نشتبو. توا وقت گالی قروه، همو جان قروه، تنیا پیانچ فیشکی پیما وتمان وطمان، علا لچو بود، کاکا که که، باری شرنازنن. اگر خپلته به هواری حواله نه خويه وهاته به د کټن نیو دوه اګرانو درنه دچون امن خوم ګیند کانېژنان لقولته تقمل برجکان کړ هل من په شک کې کوم داويشت او ان هزاران د تقان لویرم برد نوکد به هزار کس مشغول کا حل چون علی دهاد دوی نه معنی جمهوریت ایران خپل خطاب با سلیمغه ای اغای بیزی اوش ناردبوې الا گاو رو سمد نبک که اول زور به آزاد مشور بو، هوا لج بون بیان لای که بیان کتن وکرو چتی خویم. هر دو چوبون، لناودی و خانی خویدا خویان بسر دادابونو، پتی نخستبوام لیانو، لگوام دا خن کند بونیان. لبرابوین که هر شکی برپان بکنه سر دشت و قلتهو دقل دشمن بریا در شوسیا سنی هرجبر نصر دشتو گورک خو د گوندی قولت هاوین روجیک لا کازی پی بیانوا تا روج اوا به کلک چقدرمن لا کلوه پارنده وا د پاش نیجه شونده فرمانحت ک د بیل لدوری سردشت بکشنوا رادیو لندن قتویا کوردکان سرشتن ګرتوا روسکان لو نیگرانن ما نه انګلیسیان تورکن غتم منم امره جونادم یو دسله هجوم پاشان حالیان کردم کفرمان لعرضی ندری خان گریم او شوابت بدزیوه لشکر من بجهشت کنوکا لرقاب من کجن لرهی گرانو دا لدولای زوردور ورچک من دی تفنگ یکم پیونا سور دمزانی نم هنگاود بلام هندیک لحوالان گوتین کشتد براستی خاطر مناندگرتو درویاند کرد که هاتی نو حسین خانی فرماندی سپا بو او دست راستیم که هیچ راستی تیدا نبو دمانچه که خالات کرده گوتم راست نبو باوری نکرد. ماو یک شروه هره ماد بو بو، منیان نرده سرائی لای بین بمو آگدار بم، اشایر آلوزی ننی نوا، نامی نیوان دجمنو دو دوست پیگ بگوار جاریک خبر مرگرد که سربازان دولت مرگوندی کند زیوه گوندکه در بای امرخان اشکاک بیپاریزه نامه کمبونوسی که چون اگه در نبوید مرگون لبرپیتو بردوه بوینوسی بوموا، مو و او سربازانه گنمیان زوره پیخوریان کمه منش گوشتم بو نردن جاریک سرتیب هومایونی نامید که نویسی بو نیویپیرشواي عقای محمّل قاضی نویسی بو، نجوابی دا لباتی تیم سارو ترماج بومنوشی وا عقای حاجي علي کبوه زورت و رابو لسرا لپر لبرن خوش کوتم، او روزا برزاني هاتبو بو. حالی گرتمو بردم لوي بیمارستانی روسیه ل توریس کردم. من یک پتر ماموا. حمارشیدخان ل شری پیش ویدا شکاو جرّا و بانی سوتن دو عراق دولةی عراق بردی جنوب ل شاری رمادی دژیا ل جنگی شورشی امدا ل پرهات و ملبندی ساقز دولابی عراقیش دقل بون بنایی یحیا چروستانیو حمدامین منگوری که یکی ملاو یکی شاعر بو پیش وام نی دقل میرجاد نرده لایکها بچه تسبلاق ل گنتی کندی دیت منو بطنیه راست پیریکم پیگین خانزوش لجا و تی نزانی بوچیم بانگدکن نا که هاتبو روسکان دوانده بویان. راستی گوته بو که انگلیسان نردویانم کرتن لیتگدم بالام قول ددم بقصیان نکمو خزمتکاری شورش بم دستیان لیبردو لسره بناوی جنرال مایوا دولتو که ازربایجان جان بسرکردیاتی پیش ودی ملی لعاقا کشت نابو کمای کرد بو اغاوتی کردستانیش هاشمی خسروی نو گلین صبلاغه حکمی بو کانید کرد پیوی پیشواری هاشمی تاس کرد بو ک شوک بنو مال محموداغا و الیاغا و حاجی بایزغا قتل امکن لام گران هد بیگانه بیو کورد بدستی شورش بکوجی لبوكان و بهلادوان خوم گئنده پیشو فورا روئی بوتوریزو لو کاری پشیمان کرد نوا هاشمی شان لبوكان لا بردو در کرد مالا ایلخانی که او کینو بین ازانی بو، زوربس پاس و دیان گود تو نبواای یمن ندا مین. یک برادر کنوکری مالا ایلخانی بوتی آقایان کوبناویان کرده بو من یه دنابو آگم ل درگاو که نزنه دلنشی من لپش درگاو جیمگرد. گویان بیست روزیتر لشکری سکز دیانو حجم دکنه سابلاق ایماد پیشدا لبریان دروینو روینو دوایا دکوین او خبرم گیان دپیش لنامه که به خط خویدان و هزار مامری شامید با قربان به، مترسا همو کار با قیفی توده به، لشکری که هزار کسی هاتو پیش مرگا لا قراموسالیان پیشی لگرتوش کندی، اغیان رایبون بون بلانفریای رگل کوتن نکوت گرگرانی عزیز لیر دوبم شویا دین کوتایی بشی سانزایی می خوندنوی کتیبی چشتی مجوری هجاری مکریانی تا بشی گیتر شوطن شد جینتن پربید لبختواری